دعای بیستومه صحیفه مبارکه سجادیه دعای مکارم اخلاق هست از شد که اخلاق جمع خلقه و خلق به معنای عادت هاست عادت هم به تکرار عمل پیدا میشه و به دست میاد. خلق که جامعش اخلاق هست اون ارزش های اخلاقی رو فقط نمیگن. اون عادت های انسان رو میگن اخلاق انسان. حالا این عادت ها گاهی عادت های بدی گاهی عادت های خوبه. ملاک خوب یا بد بودنش هم گاهی ارخ و جمع امسانی که در محیطی زندگی میکنن هست دشیزایی رو خوب میدونن چیزایی رو بد میدونن شخص با اون ملاک خودش رو تطویر میده و اعمالش رو به همون منوالی که خوشایند جمع، کولو هست شهر و دیارش هست قائل به این هست که هملنگ جماعت باید شد تا خوب بتونه زندگی کنه و بوده در یه جبی به همراه شدن با اون جو اعمال و فکرش رو رفتارش رو عادت کنه میکنه میگن خلقش خلق خوبیه و اگر مخالف مثلا عرب برامه هایی رو دنبال کنه و به عادت برسه چه در حوزه فکر و چه در عمل میگن در میون ارب این آدم بد اخلاقیه گاهی ملاک شرعه، دینه ملاک خوبی و بدیه پندار و فکر طرف یا رفتار و عملش میزان شرع مقدسه برمه های دینه خوبی هایی که دین معلوم میکنه و بدی هایی که دین معلوم کرده این میشه ملاک اگر انسان منطبق با محاسن دینی و خوبی های دینی عمل کنه در حوزه فکر، فکرش رو که بده، سبک فکریه مورد قبول خدای متعال و دین قرار بده میگن این فکرش فکر دینیه و در عمل هم خلقش خلق حسن هست خلق نیکو هست برملاک دین مجموع این عادت هاش میشه اخلاقش میگن این اخلاقش منطبق با دین و اسلام هستش گاهی بعضی سفات هست که اینا سفات در رتبه بالاتر از رفتار معمولیه، افکار معمولیه که در دین تایید شده. کلاس دوم هست. از دین بعضی سفات مطرح میشه، بعضی نگاه ها و فکرها مطرح میشه که شاید به ظاهر لازم و واجب نیست الزامی نیست کسی سبک شو رو سبک رفتاری و اعمالش رو با اون کلاس تنظیم کنه. اختیاریه ولی خب به عنوان اخلاق پسندیده اون هم در حد علای اخلاق به حساب میاد. دای بی دای اخلاق بهترینه. منتحاد ملاک بهترینش خود دین و اسلام هست عادت داره به کارهای خیلی که به ظاهر شر واجب نکرده اما خوشایند خدا متعاله این خودش رو به علاوه اون فکرای الزامی یا رفتار الزامی که سعی میکنه خودش رو عادت بده به اون افکار یا اون رفتار رفتار و افکار ولاتری رو هم که مرضی خدای متعال هست و در دین بیان شده خودش رو به اون هم مکلف میدونه و عادت میده اونا رو میگن مکارم اخلاق مکرامت های اخلاقی بزرگواری هایی که در عرف میگن این فرد آدم خوبیه برای این خیلی کلاسش بالاست خیلی در فکر، در رفتار میتاند داره و تخلقش به اخلاق الهی از حد معمول بالاتره مجموعه سپاتی که و رفتارهایی که در کلاسی بالاتر از رفتار و اعمال واجب و حرام هست رو میگن مکرومات اخلاقی اون اخلاق بزرگوارانه امام سجاد سلام علی در دعای 20 به این نوع اخلاق پرداخته مون تا همه فقرات دعا این مضمون رو در بر نداره گاهی بعض از سپات خیلی بد رو هم حضرت مطرح میکنه و به زبان دعا پناه میبره به خدا از اون سفت کنایه از اینکه این, این سپت هم در میون اخلاق بد از بدترین اخلاق هاست با این عبارت رو هم داره